چه کفته شد گل همرا و گشت بل بل مست سلای سرخشی ای صوفیان باد پرست اساس توبه که در محکمی چه سنگ نمود ببین که جام و جاجی چه ترفش بشکرست بیار باده که در بارگاه استغنات چه پاسبان و چه سلطان چه حوشیار و چه مست از این روات دو در چون ضرورت است رحیل رواق و طاق معیشت چه سر بلند و چه پست مقام عیش مویستر نمی شود بی رنج ولی به خشم بلا بستند عهد عله است به هست و نیست مرنجان زمیر و خشمی باش که نیستیست سر انجام هر کمال که هست شکوه آصفی و عصب باد و منطق تیر به باد رفت و از او خاجه هیچ طرف نبست به بال و پرمر و از ره که تیر پرتابی هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست زبان کل که تو حافظ چه شکران گوید که گفته یه سخنت میبرند دست به دست